اما در بعدی مواد او حفل خبری وجوبن جایگاه هایی که خبر وجوبن حس می شود اینجا هم ما اگر دقت بفرماییم چار گروه از امسلو را آورده است چون جا خبر وجوبن حصف می شود لعم ای من اللهی یمین الله. ببینید این برعکس اونجا هست اینجا قسم سریح هست قسم چی هست؟ سریح هست یعنی الفاظی اومدند که فقط دلالت برچی میکنند دلالت بر سوگند میکنند اینو میگن سوگند سریح که دلالت برچی میکنند بر سوگند و قسم میکنند خب پس امثله اول که خبر وجوبا هست میشه کجاست زمانی که مبتدا صراحتا دلالت بر چی کند قسم جایگاه بعدی قسمت با هست لولا انیلو ببینید انیلو مبتدا هست اولی خرار کجاست وجوبا هست فست. یکی از جاهایی که وجوبن خبر هست می شود جواب چه هست لولا <تصفح> لولا عملون عملون مبتداست و خبری ما اینجا نداریم لولا ابتکارو همچنین و گروه پس سروران زمانی که مبتدا بعد از لولا بیاید زمانی که مبتدا از بعد بیاید خبرش وجودن ته است حاضر اما امشله گروه جیم رو دقت بفرمایید کل صديق و صديقه زمانی که بعد از بعد از مبتدا چیو باشد. واوی آمده باشد واوی اما دلالت بر چی کند؟ بله دلالت بر همراهی کند در اینجا هم مبتدا وجوبن خبر وجوبا هست می شود دقت بفرد کل صدیقین و صدیقهو کل صدیقین هر دوستی همراه دوستش مقرنانی که خبر هست و مقدر کل انسان و عمله مقرنات کل عمل و جزائه پس سومین جایی که وجوبن حذف می شود است که بعد از مبتدا واو عطفی آمده باشد که دلالت برچه کند بعد از مبتدا بعد از فیل نه چون که بعد از فیل باشد اون موقع مفعوله بله بعد از مبتدا پس اگر واو بیاید که دلالت بر مصاحبت کند اینجا می دانیم که خبر هست بله خب و قسمت چهارم امسل رو دقت بفرمایید احترامی اتثلمیده احترامی التلمیذ مهذبا احترامی احترام چه از نخشش؟ احترام مبتدا است. احترام چه هست؟ با هست بازمه تقدیری چون مضافه بیای متكلم هست اتثلمیده مفعول بهی هست عاملش هم مصدر هست محذباً چه هست؟ حال هست محذباً چه هست؟ حال هست اکثر حبی از زهر احسر ما یرا البستانو مثمرن خب ما نمیتانیم این حال رو خبر احترام قرار دیم لازم معنایی جور در نمیاد اگر میتونستیم اون موقع خبرش قرار میدادیم ولی نمیتوانی. ولی که پس ناچاریم چه قرارش دیم حال خب که حال بشه پس خبر احترام کجا رفت مولا سحیل چیزی بفر. نظری بفرو خبری وجود ندارد پس میگوییم خبر چه هست؟ بله. پس این چارمین جایی بود که خبر او دیبل می شود. دقت کنید قاعده 54 چارم کتاب را بله. جان احترام مبتدا یا مضاف الیه التلمیذه مفعول بهی مؤذبا حال خبر احترام وجوبن حذف است. تلمیذه محذباً حال تلمیذ مفهول بهی چون احترام مصدر هست و مصدر عمل انجام میدنیست فیل فعل. اینو در قطر ندا خوندید البته بحث های آخر کتاب خب یحذف الخبر وجوباً في اربعت موادع حصف میگردد خبر وجوباً در چهار جا إذا كان المبتدأ صريحا في القسم زماني كمبتدأ قسم صريح باشت إذا كان المبتدأ بعد لولا زماني كمبتدأ بعد لولا عمد باشت أمسلية كروهة ب لولا النيل لكانت مصر قفرا لولا أمل في الشباب ليا و جيم اذا كان المبتدا متلوا بواو للعطف تدل على المصاحبه زمانی که مبتدا بعد از مبتدا واو عطف آمده باشد که دلالت بر مصاحبه و همراه بودن اون دو چیز کند دال اذا اغنت عن الخبر حالون زمانی که بی نیاز گرداند از خبر حال که نقشش چی است؟ حال هست ولی لا تسلحه ان تکود خبرا. ولی اون حال صلاحیت این رو نداشته باشد که خبر واقع شود. اون حال صلاحیت خبر واقع شدن را نداشته باشد. والمبتدا مصدر مضاف الى معموله در این حالت مبتدا مصدری باشد مبتدا چه باشد؟ مصدری باشد که مضافه به معمول خودش هست مانند احترامی مبتدا ما مصدر هست احترام احترم احترم احترام احترام چه هست؟ مصدر هست و همچنین مضاف هست به یا به معمولش خب مسلم از هر مضافی عمل انجام میدهد روی چی؟ مضافون؟ پس؟ مبتدا مصدری باشد که مضاف به معمولش باشد او اسم تفضیلن مضاف او اسم تفضیل مضاف الى مصدر صریح او معول سروران مبتدا یا مصدری باشد که مضاف به معمولش هست، یا مبتدا اسم تفضیل باشد یا مبتدا چه باشد اسم تفضیل باشد که این اسم تفضیل یا مضاف به مصدر باشد مانند اکثر و حبی مصدر سریح مصدر چی؟ از زهره نادرن, نادرن حال هست خبر وجوبت هست پس یا یا مبتداه ما مضاف به مصدری باشد که مضاف به معمولش باشد یا اسم تفضیلی باشد که مضاف به مصدر سریح باشد مانند اکثر و حبی یا اسم تفضیلی باشد که او و اولی یا اسم تفضیل مضاف به مصدر معول باشد انه مصدریه اومده باشد یا ماه مصدریه ماننده احسن و مایورا البستالو احسن و مبتدا هست اسم تفضیل هست مضاف به مصدر معول هست ما به اضافه یورا با هم مصدر معولا مصدر سریح نیست سریح مانند زرم و نصر و احترام و اکرام و استخدام هستند. پس این بحث خبری بود که در چهار جایگاه وجوباً چی می شد؟ مبتدا و چی خبر وجوباً حسم می شد.